نفس بر و کام از تو بر نمی آید فغان که بخت من از خواب در نمی آید سباب چشم من انداخ خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم درخت کام و مرادم به بر نمی آید مگر به روی دلارای یار ما ورنی به هیچ وجه دیگر کار بر نمی‌آید مقیم زلف تو شد دل که خوش سوا دید و زن قریب بلاکش خبر نمی‌آید و شست صد گشادم هزار تیر دعا ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید بسم حکایت دل هست با نسیم سهر ولی به بخت من امشب سهر نمی آیا در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز بلای زلف سیاهت به سر نمی آیا زبست که شد دل حافظ رمیده از کس کنون ز حلقه زلفت به در نمی آیا